حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روز بده بلک همه دارته چون بلدی بخندیم با چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم هزما که دل به بچید توی دنیا از وج موج شادی چاپ فرداغ قدا شبواع شدت قلب سبز است بچید سوی دنیا از وج موج شادی تا فرداغ پس بردار فردا فردا. سلام عليکن حالا احوالتون چطوره؟ خوبین خوشین سلامتی چه خبر ها بلنتای تون مبارک و و و وبر! میبینم که بازار گل و کادو و ماچ و موچ و اینا داغ داغه. به خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. هر جا از, سین از طرف منم ماچ کنین هم دیگه رو. ما جان یعنی چی نمیشه؟ ها ولنتاین ماچش فرق میکنه. عوازم نبود. حالا از طرف خودتون ببوسین دیگه، عیب نداره. حالا چه زودم غیرتی میشن واسه من، حالا این یه ماچ دیگه. والله ما هم دل داریم. ها! ببوسین دیگه من نمیدونم چه کار میکنین حالا یه کاری با اصلا ما دخالت نمیکنیم شما هرکی هرکی دوست داره ببوسه راحت باشین سامی خوبی؟ خوبه خوبی چه خبر اقای من این سامی رو میبینم اصلا قلبم آتیش میگیره این بچه روز ولنتاین چرا خلا با تو استودیو باشی؟ چرا تو الان بعد کار کنی؟ خدای من مادل تالاین لیدی کمان دنش فیت می و آنگای این ری میخوای امروز بریم آرخشتی سامی روز والنتاینه یعنی میگم میام اون ور بقلت میکنم خودم به تدیه میدم دیگه خیلی الهی آره بغلش کن اینا دلش در این ناراحته به خود روز ولنتاین رو در نیار من میدونم تو ناراحتی میدونم <تصفيق> <تصفيق> فرشی جان سلام الان ساعت دوانین صبح بله. و من الان تو جادم من از عشقم نه ساعت دورم باید رانندگی کنم و به ولنتاین نه ساعت برم بیشش این خواهد بگه آقا کسایی که پیشه که کسی هستن که دوستش دارن ارزش کنارم بودن رو بدونید آقا ارزش کنارم بودن رو بدونید ولنتاین بدونی. همم مبارک مزدک از بالتیمور تو رای آهایو خیلی وضعیت از بالتیمور ما تو راه اوهایو خیلی مراقب باش خطرناکه من شنیدم چیزه اشق اینه ها ببینین نه ساعت داره میکو ببره اشقش رو ببینه قدر همدیگر رو بدونین اونایی که پیش همین قدر همدیگر رو بدونین نه ساعت داره رندگی میکنه روز والنتاین کنار اشقش باشه یاد بگیرین بله یاد بگیرین حالا شما یه هفته مونده به والنتاین یه چیزی رو بهونه کنین، قهر کنین یا اصلا کلاً از رابطه رو کات کنین که چی؟ روز ولنتاین مثلاً وقت یه وقت نخوای یه شاخ گل بخری. آقا دم شما گرم، مرد واقعی یعنی تو. خوش بگذره بهتون ولنتاین. ما از طرف من نمیخواد بکنی. از طرف خودت ماچ کن. والا اگه خانومان خانومان زمی زنن از طرف من میخوان دوست بسراشون رو ماش کن نمیخوام ها نمیخوام نه را من راحتم من ریلکزم خانوما آقایون حالا این وسط داستان ولنتاین رو اینا شنیدیم دیگه ای امسال این نیروه ای انتظامی اصلا اصل پیشگیری پیشگیری بهتر از درمانه رو کلن و ها رو کردن و چند روز مونده به روز ولنتاین به همه واحد های سنفی اتحادیه آبمیوه و بستنی و کافی تهران ابلاغ کردن با هر گونه مظاهر ولنتاینی که توی مغازه‌شون اتفاق بیفته برخورد شدید میکنن. اینه که آدم فکری میشه که خب حالا عزیزان ولنتاین باز آخه چیکار میکنن امثالو؟ چیکار کردن؟ کجا قراره برن؟ نه فکر کنین. تصور کن. من نمیدونم بالاخره هر کسی یه راهی برای ولنتاین بازیش پیدا کرده حتما دیگه. فکر مثلا. نمیدونم یه کافی شاپ، یکی و برده پارک، یکی برده منزل، یکی برده کبابی، بعضیا شاید سر کله‌پزی دار بوده باشن برای دفع آسیپای ناشی از پلیس. کی میدونه؟ باش با چاره بیا! عزیزم میشه بگی چرا من امروز آوردی کلپ هزی جای رمانتیک تر از اینجا سراغ نداشتی روز والنتاینی عزیزم مگه نمیدونی چی شده امسان نه چی شده اون قولایی که به من دادی رو خیلی بزنی زیرشون نه عزیزم من سرم بره قولم بره چیه دوباره اون دختری ایک زنگ زده بهت تو ها کجور؟ جو... عزیزم چرا مم. نفوس بد میزنی؟ این حرفا چیه نکنه دوباره بابات دبه کرده میگه پول نمیده بریم خارج از کشور عزیزم اجازه میدی من حرف بزنم آ یعنی چی همش که داری تو حرف میزنی؟ اصلا من دیگه لام تا کام حرف نمی‌زنم بدید خب برم مسئله اینه که امسال نیروی انتظامی رفتن دختر پسرا برای ولنتاین به کافه ها رو ممنوع کرده خب واا. چرا زودتر نمیگی خوب هزار نمیذاری قربونت برم برای همین اومدیم کل پزی وای چقدر خوب و متفاوت اره. مرسی قربونت برم عزیزم قربونت برم کل پزی برای این کار ای مناسب نیست وای او... یعنی چی به اینا چی مربوطه هیچی برش کن ببین من سعی کردم کادوی کادای تو برات چشم میگیرم چشم؟ چشم دیگه چیه؟ چشم گوسفند دیگه صبح آه. اومدم یه چشم گوسفند برات سفارش دادم. اینه چشای خودت. اصلی و خوما. چشم اینها داره میگه. بله بله مال ما خوب ببین. مرسی مرسی ممنون. چه بوی می ده. اینها بله این مال خانومه. اونم پاچه او. منه. چشمه یعنی شبیه چشمای منه آره دیگه عین چشای تو واقعا تو فکر میکنی این شبیه چشمای منه آره دیگه عزیزم تو اینجوری فکر نمی‌کنی ببین چه دی... معصومیتی تو مردمکش هست عین معصومیت تو واقعا خجالتم نمی‌کشی تو نه چشمه منو با چشم گوسفند مقایسه میکنی بعد می‌خوای من نفهمم که پای یکی دیگه وسطه جان تو کجوت یعنی میگم چانه یعنی کو کی واسطه؟ ما داریم درباره چشم گوسفند حرف میزنیم چشم گوسفندیت بخوره تو سر. برو، برو با همون که به زنگ زده بود ولنتاین بگی. آخ عزیزم من خواستم چون کافی شاب نمیتونیم بریم یه جوری رومانتیکی تو رو سرپرایز کنم فقط ولنتاین. چشمای منو با این همه ریمل و خط چشم و موژهایی که کاشتم با چشم گوسفند مقایسه میکنه. خاک بر سرت کنن. تو از اولش هم کار بودی. خوب من. شد فهمیدم. بابا آخه، کجا میری؟ عزیزم عزیزم وایسا، همه زندگی من برای تو چشوی تو برام زیباترین چشمه اصلا چشمت تو چشم پرنده است پوستتم با مثل شیر چی میگم من عزیزم پوست اون خواهرت مثل شییره همه به من میگن پوست من مثل گل میمونه این من میگه پوستت مثل شییره بابا غلط کردم اصلا بیا بحث ایوانا تو فراموش کن نه تو تو یه حیونی به نظر من برو با یه حیونه دیگه دوست حیون کجا میری عزیزم عجب ای قلاش مکن و مکن مکن فاش مکن بر سر بازار روز تو روزت تو حاصل در یوزت آب تو خوزت آب به بار مرا بله حالا از فاز ولنتایم مگه ولنتاین اگه, اگه کم بخوایم بیم بیرون ارس کردم که این هفته همونطور که موسسهزر هستین داریم در مورد هنر و هنرمند صحبت میکنیم یعنی موضوع این هفتمونه دیروز از رسالت و هدف هنر گفتیم و امروز میخوایم کمی به تفاوت هنر واقعی و هنر فیک بپردازیم و راههای تشخیص هنرمند از هنرمند نماها رو با هم یه مروری بکنیم ببینیم چه پس جا داره یه سلامی عرض کنیم خدمت همه اون دوستانی که عاشق محافل و دکوپوز هنری ان هن اما متاسفانه هنری در خودشون سراغ ندارن و با سرقت ایده و کپی از اینو اون برای خودشون یه جایپایی تو دنیای هنر درست می‌کنن و خلاصه یه خستنباشیدم میگیم به اون هنرمندانی که تمام وقت آقا تمام وقت میگم تمام وقت ها یعنی تمام وقت در کافه ها و محافل هنری و جلسات از ما بهترون پرسه میزنن و اگه لابلای برنامه های فشرده اینجوریشون فرصتی پیش بیاد گاهی به کارهای هنری خودشونم میرسن خسته نباشید واقعا پس بریم سراغ هنرمند و هنرمند نما هنرمند واقعی و هنرمندی به شرط عداب و اتوار بیانیگه شماره 983 بدانید و آگاه باشید بعضی از آدمها یکی از بزرگترین هنرهایشان این است که عدای هنرمندها را در بیاورند و گاهی وقت‌ها این ها در این راه به قدری حرفه‌ای و قوی ظاهر می‌شوند که آدم دلش می‌خواهد اسکار بهترین هنرمند قلابی سال را به آنها اعطا کرده سیمرغ دروغین جشنواره را توی کله آنها بکوبد و در همه حال در برخورد با این آدم ها لکن ما از بی نیم، ام زاو، از برخورد با هنرمندان غلابیه ادوات باری پریز رادیو پس پس دا دا دا, دا. چون به نظر من هنرمند ایرانی به دو دسته تقسیم میشه یکی اونایی هستن که با خود حکومت هستن توشون میلولن و میتونن اینطوری هم خیلی موفق بشن و یه دسته اونایی هستن که نه تابو میکنن با حکومت نیستن از درد مردم میگن و حتی میتونن فتفا بگیرن و همین مسئله باعث میشه که یه اثر هنری برای من قابل پذیرفت باشه یا نباشه بale بله خیلی ممنونم از اینکه نظرتونو گفتین ما این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگید که اینکه میگن هنر نزد ایرانیان است و بس به نظرتون حرف درستیه یا نه این سوال این هفته برنامه رادیو پاسورده از شماست و پرسیدیم که بگین خودتون چه هنرهایی دارین و از این هنرتون تا حالا چه هایی کردین و بازم اشاره کردیم که اصلا لازمیست حتما شما مثلا موسیقیم باشین نقاش باشین بازیگر باشین گاهی کارهای روزمره و هر جنبه ای از زندگی شما و ما میتونه هنرمندانه باشه و این هفته لطفاً برامون از هنرنمایه های خودتون یا اطرافیانتون بگین تا ببینیم بلاخره در عالم هنر ما ایرانی ها با خودمون چند چندی. سلام در مورد این هنرنظ ایرانیان است واقعا من شما خودم فکر میکردم که ما واقعا هنرمنددی دیگه مثل آقای رمنی نجاد ه سال هنر نمایی کرد برای من کرد خواهیم داشت نه واقعا دیگه داریم از این مدل نداری قربان سامان خیلی ممنونم سامان جا حالا خدا رو چه دیدی دیگه حالا شاید در آینده حالا کسی هنرمندتر ازیشون هم در پست ریاست از جمهره زیارت کردیم دست بالای دست در این زمینه زیاد زمان جا موسیقی vale. اما چند وقت پیش یکی از علماء در یک برنامه ای صحبت از قدرت امام زمان میکردن که صحبت رسید به قدرت بدنی ایشون و اینکه چه کارهایی میتونن با قدرت بدنیشون بکنن گوش کنین لطفا تنومنترین درخت روی زمین را یک دست با یک دست ریشه میکنه یک کدومتوان من در اوز این کاره میتونه بکنه کی این کاره میتونه بکنه مسئولیت سنگینه در بر برابر او مسئولیت باید قدرت بله بدنی هم داشته باشد بله الان واقعا بر من میدونید سوال پیش اومده یعنی میخوام ببینم تصور علمای دین از امام زمان و شیوه مبارزه با دشمنانش چیه آقا یعنی ایشونو مشابه یا مثلا بتمن یا سوپرمن اینا یا موجودات عجیب غریب اینجوری میبینه آقا اصلا فرض کنیم امام زمان قدرت بدنیش اندازه پنجا تا میدونم فیل باشه همینجوری که فرمودن یه درخت قطور و ایشون با دست از دربیارن. در بیارن الان این میخوام ببینم از این قدرت بدنی کجا و چجوری میخواد استفاده بشه آقا مایی تمبتن و به شیوه جنگجیان کوهستان و لیان شامپو قرارم از با ظلم و ستم مبارزه بشه که مثلا لازمه حتما برای مبارزه زور بازو داشته باشن یعنی مثلا توی جنگ میره تانک دشمن رو با قدرت بدنی از زمین بلند میکنه پرت میکنه اون دشمن شکست میخوره این همین کارتونیه قضیه یه بار بعد اینو قشنگ توضیح بدن به خدا ما گیت شدیم دیگه نمیدونیم چیه قضیه این چه مسئولیتیه که امام زمان برای انجام دادن اون نیاز به عضلات در هم پیچیده داره من نمیفهم شماها میدونید به ما بگی خیلی متشکرم شیچ جان سلام گفتن هنر نزد ایرانیان است دو بس آره نه شرط اشتغال خوندین بله خدا خیلی متشکرم آره ایشون هم نظرشون اینه دیگه هر کس از این شعر برداشت خودش رو داره حالا ما گفتیم هنر نزد ایرانیان است دو بس ایشون فرمودن که هنر نزد ایرانیان است دو بست. دیگه تصورشون این بود که هنر به اندازی دو تا بس نزد ایرانیان آقا الان بس چند در میاد داشت؟ فی بازار چیه؟ نگفتی؟ <تصفيق> شادی توی فیسبوک گفته فرجید عزیز همه که در ایران با این حقوق و پولای اندک بتونیم به زندگی و زنده موندن ادامه بدیم خودش هنره که هر کدوم از این آدما هنرمندی بزرگ هستن. بله خیلی ممنونم. تو این هنر می کشور هند دیگه اونجا اساتید این هنر که مرتاز بهشون میگن می, می که فقط با خوردن روزی یه دونه زندگی میکنن اونها دیگه مرتاز این راهن. از روزو شما توف اینستاگرام بریم ببینیم که مینا گفته که هنرمند مردم با معرفت ما هستن که واسه پسر مبتلا به سرطان احوازی جشنه برابرده شدن آرزو میگیریم و اونو آتش نشان میکنیم تا به آرزوش برسه پس واقعا هنر نزد ماست دستشون هم درد نکنه امیدواریم او که اونقدر یه روزی هنرمند بشیم که هر بچهی ای توی این کشور بتونی یه روزی به آرزوهای خودش برسه ا اه... ک... ک... چ... اسمای عجیب غریبی میذاره آقا من نمیدونم چه جوری بخونم کز حل کجله چیه کچله کجاله این که میگن هنر نزد ما شاید منظورش اینه این که واسه هر کاری اه... یه راه در و دور زدنی پیدا میکنن مثل همین دور زدن گشت ارشاد و از این قبیل البته قطعا هنر قطعا هنرمند واقعی هم زیاد داریم اگه اونو میخواستن بگن میگفتن پیشوندن نزد ایرانیان است و بس من فکر نکنم دلیلش اون باشه ما هم... به حال هم هنرمندیم هم اهل پیچوندن و دور زدن یعنی yani اینا با هم فرق میکن ممنونم از کامنت هاتون ممنونم از تماس هاتون های ارتباطی برنامه رادیو پاسوردا رو امروز میخوایم خیلی متفاوت یعنی انگلیسی خارجی میخوایم تقدیمشون شما بکنیم Hey, Farisheed, this is Kimberly. I'm calling from Portland, Oregon. My boyfriend, Cena said that you're tired of telling your listeners how to contact your station, so I'm going to do it for you in English. For those who wish to send an email, please do so at pasfarda at .com. Also, you can follow us using the following apps... facebook Google Soundcloud Instagram and telegram channel you can contact us by phone if you're using telegram the phone number is zero zero four two zero six zero two thirty three eighty three seventy seven outside of Iran please dial zero zero four two zero twenty two eleven twenty four one thirty three and one sixty three for all local calls please dial zero zero four two zero two twenty six twenty one seventy nine thirty nine and finally they have an amazing iOS app that you can record your voice and submit to us and 50 seconds. هم رو همرو گفتن. فهمیدین چی شد اصن؟ ما در این حد یعنی در حد اینترنشنال مللی داریم کار میکنیم خیلی خارجی، خیلی خارجی و خیلی هم سریع خیلی ممنونم Camely از پورتلند آمریکا راه ارتباطی رو به انگلیسی گفتند. Thank you Camely, thank you, thank you. Uh, very much. Uh, دیگه چی بعد میگم اینجا؟ امی یه مقدار شما خارجی با خارجی حرف بزن. Uh, thank you دوست پسر داره این دوست پسر شنونده ما سامی جان. نگرانت کن شما صبر آره امروز از حالا ولنتاین و اینا باشه ولی به هر حال خیلی متشکرم تشکر میکنیم سامی هیچ کاری با شما نداره دوست عزیز که شنونده این برنامه هستین با کمل هم کاری نداره دوست دختر اصلا داره ما برای زمی گیری من اینجا اصلا مشکل نداره اصلا خودتون ناراحت نکنین خیلی ممنونم خیلی خارجی شد اصلا یه حالی دست داد امروز با خدا شکرت Sometimes you're in love, you can never work it out Only you can see the pain in my eyes I don't want to stress, let's just take it nice and slow And we can play another one night style. All اما خانم آقای این دختر خانم‌ها و پسرا تو عالم هنر به ازای هر هنرمند چه می‌دونن 12 تا هنرمند نما وجود داره و همیشه تشخیص هنرمند واقعی از هنرمند نماها چندان آسون نیست. خیلی از کسایی که دوست دارن هنرمند بشن اما بذاعت و استعداد و پشتکاری برای این کار ندارن سعی می‌کنن با تغییر توی تیپ و ظاهر و رفتارشون دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن و این حس رو درشون به وجود بیارن که وای هنرمند طرف هستن و به این شک کمبود خلاقیت و استعداد خودشونو جبران کنن. ها بیشتر از اون که برای ساختن و خلق یک اثر هنری وقت بذارن، برای رفتن و رفتن به خودشونو ست کردن، های عجیب غریب باهمو، نمی‌دونم بافتن ریش و مو و البته حضور تمام وقت توی محافل و مجالس هنری وقت میذارن بله. اما یکی از راه های هنرمند واقعی از هنرمند نماها اینه که شما معمولا هنرمندای خوبو زیاد توی محافل و پاتوغاب و مثلا لای دست و پا نمی نمیبینین یا کمتر میبینین معمولا وقتی وقتی خبری ازشون میشه که مثلا یک اثری ازشون بیرون بیاد یک کار مثلا هنری ازشون بیاد ولی برعکس هنرمندای تزیینی هنرمند نماها همش جلو چهشو تو دست و پا و همج ولن دائما از این محفل به اون مجلس از اون مجلس به این مصاحبه از این مصاحبه به اون مهمونی همج در حال جلون دادنن یکی لحظه هم غایب از نظر نمیشه همش هی میخوام بگم ما هستیم برای همین تو دنیای هنر شما گاهی چهره رو ملاقات میکنی که به شدت هنری میزنن ها این یعنی تیپ کاملا هنری ظاهری به شدت جذاب منتها هیچ وقت لذتی رو که از دیدن خودشون نصیبت میشه با دیدن و یا شنیدن آثار و تولیدات و هنریشون نمیتونی یعنی به هیچ وجه نمیتونی هر چی تلاش میکنی نمیتونی بفهمی یا تجربه کنی متاسفانه قریبورز غریب سلام خوشحالم مثل وقتی که استقلال به نفت میبازه آره میدونم داری رسیدن یه نفر اونجا کری نیستونی آره اس باخت بدی داد هر امروز به نفت صدر جدلم از دست داد با این باخت یک پرسپری که یه گل خودی هم صورت گرفت بله خیلی این خوب این خوشالی ابتدای کار سریع میگذریم میریم از این خوشالیه این های کارلوس کیروش توی یک دو روزه انگار خیلی سر و صدا کرده توی های داخلی بیشتر برام بوده درست جان آره بعد از اون خبر استفاش که دیشب اشاره کردیم یه سیمی پخش پخ شد تو چند تا از شبکه های سیما که کیروش به چند نفر گیر داد انگار یه جورایی دنبال دردسر سر تازگی ها این صداره بشتبیم که کیروش و مترجمش در مورد آقای ترابیان حکسدن بشتبیم قبلا به آقای ترابیون گوشزد کرده بودم که حتی در رویاهاشونم هم اسم بندر رو نیارن. So if he is a man in name of the nation he must say something because he is always hiding himself in coward words. It's enough, I'm tired. And ایشون... I told him not even to mention my name. ایشون اگر یک مرد هستند، می‌بایست به خاطر منافع کشور بزرگ ایان بیان و مسائل رو مطرح بکنن. ایشون همیشه صورت خودشون رو پنهان کردن و با خالتی بسیار بزدلانه پنهان شده. بله و آقای ترابیان که اینجوری را جوییی صحبت میکردن چه سمتی داره کیه؟ اصلا واکنش نشون داده یا نه؟ گوت فراک امروز اصلا کلا برممون داره خارجی میشه فرشید آده. یا احوااس ترابیان مدیر اسبق تین ملی بوده همون موقعی که کهکیرش تازه اومده بود ایران حدود پنج سال پیش ایشون تلفنی هم اومد رو خط شبکه خبر و اینجوری واکنش نشون داد به آقای چهرش اولاً من که بخاطون عرض کنم که اصولا ادب ما ایرانی ها به ما اجازه نمیده که مثل آقای کیروس صحبت بکنیم. ما ادبیاتمون با ایشون کاملاً متفاوت هست و آنچه که شما از زبان ایشون شنیدید چیز بسیار عجیب نیست و به طور دائمیشون از این ادبیات برای افراد مختلف استفاده می‌کنن. عجب، پس داستان اینجوری بوده. حالا البته ما ادب ایرانی رو اگه بخوام از فضای ورزشگاه همون بهش ببیبریم که یه جور باید درباره ولی بگذاریم اینم از دادسان های کیروش و آقای ترابیان دیگه چه خبر از و... ورزش های دیگه؟ فرسی جام به بحانه انتخاب دو تا از دخترای فوتسالیس ایرانی در جمع ده فوتسالیس بطر جهان یعنی فرشته کریمی و فرزانه تبسلی یه مصاحبه کرده فرشته کریمی با خبر ورزشی مفصل در یه جایی بامزه از این مصاحبه، وجود هر گونه سوسکو مارمولکو تو خوابگاه دختران تکزید کرده خدا رو شوی خیالمون راحت شد چرا حال تکزید <تصفح> کرده حالا جالبه آقای کفاشیان قبلا گفته بود وقتی این بود گفته بود سوسکو مارمولکو خودمون پرستادی تو دو دوی دختران که تحسشون بریزه تنز کفاشیان رو به خود چارلی چابلین نداشت خدایا نگیرین خوشی ها رو از ما این کفاشیان ها رو از ما ممنونم. پدرور عزیز باد خداحافظی می کنیم تا فردا تا فردا خدا قابل توجه کلیه مندان به فعالیت‌های هنری و خیلی خوشطور اگر علاق من به حضور در محافل هنری و تئاتر بازی کردن و حامد بهدادین هستید اگر دوست دارید عباس کیارستمی را در جمع باسی صدا نمایید اگر می در اولین نگاه به شدت خاص و هنری جلوه نموده و در اکیپ های هنری پذیرفته شوید با مؤسسه هنری آموزشی هنرمند پردازان تماس بگیرید آموزش آخرین متود لباس پوشیدن شامل دوره های گلیم پوشی و گیوه شناسی آشنایی با انواع شلوارهای پاچه پاره و بالا پف پاچه جز بالا جس پاچه پف و آموزش حمل خورجین به جای کیف و ده مهارت پوششی دیگر آشنایی با انواع آویزهای زینتی هنری مثل شال گردن، تسبیر، گردنبن، خرموه، عروسک، کن، تشتک نوشابه و سایر آویزهای هنری برای آویختن به خود و دوره های آموزش فن بیان و اکتای خاص هنرمندان شامل شلشلی حرف زدن ولو شدن، تیک های هنری، فهاشی های هنری و قهقهه زدن با صدای بالای سدسیبل صد برای هنرمند شدن هیچ وقت دیر نیست همکنون با ما تماس بگیرید مؤسسه هنری آموزشی هنرمند پردازان با سلام بیست و سی دوشنبه شب را ضمن وحشت از انتشار دوشنبه شب چی شب ضمن وحشت از انتشار شایعهی تلاشی برخی کشورهاوی عربی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای با رونکرد نظامی با مروری بر سرخط مهمترین علاوهین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نمایی از نظر فرمانده ناجا مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات اسفه و نظر کارشناسان که اگه خورشید تو این دست و ماه و تو اون دست شما بذارنم شما این یک کار نمیتونید بکنید احتمال حضب نام حابشمی رفت از لیست انتخاباتی جامعه راهاملیت و نظر ناظران که حالا ایشین و بعد انتخابات کلن از لیست هستی ساقد نکنن این لیست خیلی مهم نیست و منتفی شدن طرح فروش خدمت سربازی به کسا که پنج سال غیبت دابرند و نظر فعال ها غیبت که با این قیمتهایی که شما برای فروش سربازی گذاشتید دو سالشم بکنید امرن به صرفه مهمترین مثل یه خبری سابت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکار بوی بوی. با سلام پاس از ممنوع شدن حضور دختران و پسران در کافه ها برای انجام اعمال خاص روز ولنتاین نیروی انتظامی طبق بخشنامه ای تورهای ولنتاینی را هم در روز ولنتاین امسال ممنوع کرد برنابه بزرش ها پس از انتشار این خبر گروه های مختلف ولنتاینی کشور ضمن تشکر از نیروی انتظامی به خاطر این اطلاع گسترده اعلام کردند تا به حال روحشان هم از برگزاری این تورها خبر نداشته یکی از نمایندگان این گروه ها به خبرنگار ما گفت یکی از آرزوهای ما این بود که در ایام ولنتاین به سفر دست جمعی برویم اما نمیدانستیم که در کشورمان هایی هستند که این خدمات را ارائه می‌دهند وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده بتواند به همراه پارتنرش از خدمات زیرزمینی این تورها به نحو مناسبی استفاده نماید پایان مشروح اخبار بله باب تشکر از توجه شما تا بس ایک و سی دیگر و بولی, بولی دیگر خدا نگه دار خیش تمشد ای اه آقای اه میکو طلا میشه امروزی مم. کمک به من بدین؟ بله بچی من اصلا اینجا هستم برای کمک بگو لب تر کن فقط بگو چی کرده داری این کارتونه رو میخواستم یه طرفش رو بگیرین ببریمش تا پایین کارتون چی؟ من فکر کردم یخچال مخچال چیزی این تحسیسیاتی آوردن بذارن تو اتاق این... نه چ... نه دیگه اون با... کادوی ولنتاین دکتر من براش گرفتم سفارش دادم بیارن اینجا که سورپرایزش کنم کادو بین گندگی چی هست حالا بول, بول؟ گازه یخچال چی؟ نه بابا یه خرسه بزرگه اگه بدونین چقدر کیوته بول, بول به من بگو که داری شوخی میکنی بگو که میخوای منو سر کار بذاری بلبل بگو دیگه یعنی بگو چی شوخیم کجا بود آقا این میکروفون حالا یعنی تو بله اون خرسه گنده یه هیچ خریدی اندازه خودش آدی <ایدان> آقا میکروفون طلا ای دکتر اومد اینیشه کمک کنین آب. اینو ببریم پایین چه بگم والله بی ببریمش تیگه با من هم سر را برم دستشوی وعضی مزاجی مثلا به هم ریخ بایین هرکتت بول بلا خود هستم خو بیشتره. دیخون اون ورشو بگیرین من این ورشو میگیرم باشه, باشه. باشه. باشه. بره بره. فکر کنم خیلی دکتر خوشحال بشه عاشق خرسه باشه بابا اه. اه. اه. بگی اون ورشو بینیم بگی اون ورشو چقد تو با این شوهر کردنه تیم آقای میکروفونت همین چه بزه حرف زدنه بگیرش بگیرش همون باشین بگیرش باشه بابا چه سنگینه این موازد باشی. بابا این چی آخه سلام با استیک دیگه در خدمت شما هستیم امشب هم برای حضور روی گاز ستیک تعداد زیادی متقاضی داشتیم اما راهیافتگان به گاز استیک چهار شرکت کننده بیشتر نبودن پس وقت رو تلف نمی گازمون گازمون روشن می با اولین شرکت کننده از کاشمر خراسان رزبی سلام امیر هستم از کاشمر خدمت تو تماس میگیرم می طرز تهیه کم جوش یک غذای محلی رو برا تو آموزش بودم ابتدا ماست چکیده پرچرب رو به شکل دوغ در میاریم یک مقدار پیاز رو خلال می کنیم با روغن زرد گوسوندی تفت میدیم بهش نعنا و ادویه هم اضافه می کنیم. پیاز ها سرخ شد دوغ رو اضافه می به اون تا حدی گرما میدیم که نجوشه اون دوغمون بعد که گرم شد اون رو نون خشک داخل علشتلیت می و نوش جان می کنیم. بله ممنونم از شرکت کننده اول میریم سراغ پرودیوسرها یا شف های برنامه شف محسا. دوست دوستان عزیزم ثابت شده که روغن حیوانی اسیدهای چربی داره. قابل تجزیه بر بدن نیستن بنابراین من به خاطر قصور صحت هم نمیتونم با شما همکاری کنم البته ایشو همکار ما بودن ها ولی از نظر ما مزیق قضا مهمه بس سلامتی من خیلی به قضای شما علاقه داشتم میخوام با هم در ارتباط باشیم خب همکار گرامی، سلامتی که نباشه دیگه خوشمزگی هم معنا نداره ها تو کام ما شما نبودم که با دوستمون بودم عزیزدید دوستان ببخشید وقتم کمه باید بریم سراغ شرکت کننده بعدی ببینیم این شرکت کننده از کجا هستن سلام فرشید بودم اجاق ولی ساکر مت برنامه استیک که به سک دی ساکره بعد هیچی بل نیمه ولی جاات خالی اما ع مایشور ادطله مایشور دا ان اینکه غضا خوشمزه هسته انت غضا خوشمزه هسته ن و نفرش نا با نازختون بابولیم که زه ایدهنه جای شما خالی من فقط نیست م خه د بخنش نیمه مایشور داره با ادطلا آداب به به به بریم سراغ شف جلال. عزیزم من خیلی طرفدار ماهی نیستم راستش ولی خب اینطور م. که شما بس کردی قضا تو من دلم میخواد یه فرصت به شما بدم اما من فکر میکنم که این دوستمون 100 درصد خودشان نذاشتن در واقع وفور قصور توی کارشون مشهود بود خیلی ممنونم بریم سراغ شرکت کنده بعدی یه نیم کیلو بنای خوبی میشنی میریزی اتو جوغن و پاک ول کویش. یه زره او میریزی روش با قاشق حسابی همش میزنی از توی یه صافی یه پارچه ردش می‌کنی یه او میذاری کنار یه قابلمه کوچکی میذاری رو گازو زیرش تاش می‌کنی یه زره روغن خوب می‌ریزی کفش بعد یه سر پیاز خرد می‌کنی می‌ریزی توش پیاز دقت که یه زره رنگش برگشت ای او بنو بش اضافه کنی. زیرش از زیر این قابلمه یه زره ها ای بعد یه زیش ملایم روشن باشه یه نیم ساعتی همین تو آروم آروم بپزه وقتی پخ در قابلمه وا می‌کنین چه بوی جونم براتون بگه غذایی که واسه رو شنیدید اسمش آببن است که توی خیلی از شهرستان‌های استان فارس تبخ میشه من مرتضی هستم و خدا خدانگهدار ممنونم مرتضی جان از تلگرام فکر می‌کنم این اه اه بله این غذاشون رو برای ما فرستادن این رسیپی رو ممنونم بریم سراغ شف شهرام میگم شما می‌دونید با غذا درست کنی که ازت متنفر بشن اون موقع آشپزی خوبی هستی بیشتر دقت کن دوست خوبم من فکر کنم غذا جالب بود ولی به نظر من آدم وقتی آشپز خوبی میشه که همه غذاشو دوست داشته باشن اینه که این حرفا رو جدی نگیر خیلی منو فهمیدون شما الان با ما بودی نه من با شما کاری ندارم من, من با شرکت کننده‌ام بودم عیزه بدین دوستان ببینید... عزیز دوستان فرصت نداریم خواهش میکنم. شرکت کننده بعدی لطفا از کرمانشاه فکر میکنم سلام فرش جان خوبی برادرام این خواستم غذای که رو برات بگم یک اول این یادت نره دو ترخنه، ترخنه خیلی مقاومی برای سرماخوردگی سه خورشته خالال، خلال, خلال بادام، حرف نداره، و کربن آخرش چمیشه عالیه با خدا. سید کرماشاهی از تورنتو کانادا. ممنونم، شف میشه؟ حس خوبی توی کارتون بود هرچند یه جایی از منو خارج شدی ولی درکل شهود حضور خوبی داشتی میگم الان نفهمیدم شما با ما بودی؟ <تصفح> نه همکارم من دارم به شهود حضور شرکت کنندم اونو حرف میزم باشه قضاعتون خیلی خوب باش. شما دست پخت قشنگی داری ما با قضاعت حال کردیم. خیلی ممنونم از همه شرکت کننده ها و از شفای عزیز میبینید که رقابت بین شرکت کننده ها و حتی بین پروڈیوسر های برنامه ما هم داره از روز جدیتر و جدیتر میشم و در این قسمت از برنامه گوش میکنیم به کسانی که زحمت کشیده بودن و کاراشون رو برای ما فرستاده بودن اما به دلایل مختلف نتونستند به گاز استیک راه پیدا کنن این شما و این هم غذاهای غایبه میش راجب کشک زرد با بگم که با و چه خوشمزدگیم مخصوصا سره سب خجيب غالب خری که یک مر روغ رویو بندن ماوریردیا یه غذای داریم به اسم ترخینه این ترخینه یه مدل سبزی خاص داره به علاوه یه گیشیر شیرتون یا همون سیراب شیر شما به اضافه عدس و نان مریزم در قابلم و معلم قشنگ جا افتاد مثلا من جنوب هست اسمش حشو طرزجاتش رو اینا ماهی. و پیاز رو و, می و, می تو, ماهی و می تو تنور. الله که پتر درست بله ممنونیم از همگی شما که با ما همراه هستید، فقط اشاره می‌کنم لطفاً، لطفاً. اه، طرز تایید غذا و تلفن هایی که میزنید کوتاه باشه هر چه تر بهتر و لطفاً با لحجه محلی شهر و دیار خودتون با ما تماس بگیرید دیتون در از شما تا استیک فقط یک گاز فاصله است شبتون خوش اما دو روز پیش یا سه روز پیش شبکه خبر به مناسبت برگزاری جشفره فیلم فرج یه میزگرد تلویزیونی برگزار کرده بود و از یک کارگردان و یک منتقد ارزشی و همون دلواپس سینمایی دعوت شده بود که بیان و از دقدقه هاشون بگند این برادر منتقد عرضشی دل دلپذیری از وضعیت اخلاقی و عرضشی توی سینمای ایران داشت و به شدت نگران شکلگیری کلیشه هایی بود که چهره مرد غیرتمند رو مخدوش کنه گوش کنین شما هم لطفا که زنای مظلوم مرد ظالم این کلیشه های موزه سینمایی ماست که شما می بینید یا مردای عرضان بازش شما غیرتی بحث غیرت جزء ابتدایی ترین اخ... اصول اخلاقی ماست همه این که ما یک آدم غیرتی رو به عنوان یک آدم اغدهی وحشی دیوانه نشون بدیم این دیگه انگار داره تبدیل به یک کلیشه سینمایی ما میشه و این اتفاق خیلی اتفاق بدیه بله یعنی چی که هی تو فیلم ها مردای غیرتی همیشه نقش منفی و روانی و نیمه روانی دارن؟ به فرموده ایشون غیرت یکی از اساسی ترین اصول اخلاقی ماست و کلن باید همیشه مردای غیرتی نقش آدم خوبه رو تو فیلم‌ها داشته باشن اصلا غیر از این باشه ارشاد نباید مجوز بده من دوست ندارم سلام خودشو نونوار کنه دوست ندارم آرایش کنه بره خرید دوست ندارم مرد غریبه بگو بخندرا بندازه دلش بخواد گردی کنه حق داره دوست نداره خب این الان یه بخشی از فیلم قرمز بود البته که مرده که نقش شما علیزو فروتن بازی می‌کرد دیوانه بود رسماً بله، همین این فیلم آخرش مثلا بعد از اینجوری تموم شد که ما مرد بعد از اینکه خانمش رو چند سری دیگه با کمر میزنه، خانمش ناگهان به خودش بیاد و از کاراش پشیمون بشه بعد دوتایی برن مشهد بعد توی سکانس پایانی فیلم خانومه کنار ساقخونی طلا رو کنه به شوهر غیرتی خودش و بگه اگه کوتاه کاری تو نبود معلوم نبود الان چه سرنوشتی داشتم ازت ممنونم. بعد یه قطر عشقم به چه کامیج فیلم تموم بشه. این چاقاش. دلگرانی ما از خطاها آدمی است. که به چشم خود شاهد پیروزی باشن کامران ملک مطیری سلام بزن بریم سلام چون شما ولنتاین همه مبارک تو هم اونجا دیگه نایبل مچباره باش دیگه البته اونجا مال شما هنوز نشده ولنتاین تو مونده فکر میکنم نه؟ شما چون زمان دیشب ما شب رفتیم پیشواز. شما دیشب ما هم دیشب رفتیم پیشواز. شما الان تو الان بعد برید پیشواز. <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب. چه خبر ها آه. آه. اه، امروز فرشجان اعلام شد که چند تا فیلم قراره به زودی به نمایش در بیان تو چند روز آینده چند تا فیلم هم برای اکران نوروزی در نظر گرفته شدن که به مرور معرفیشون میکنم. فیلم آزادی مشروط ساخته حسین محکام از چهارشنبه نمایش عمومی شروع میشه بخش از صدای فیلم رو بشنویم من بعدم بیشتر توضیح میدم بشنویم آخه بسید من آماده اینجا اینجا هسته یادمه که دوزی کامتری کم داری خانمشو آلت خوش داره که چه خفه بخش دیگه هیچ سرقی بایی بچه نداری هیچ سرقی بایی بچه نداری مثل این تفیق تفری ها جوری زندگی کردن که اگر تو کرده بودید معلوم نبودن چه غلطی داشتی می کردی. به خاطر ایچی اون کار باد کرد؟ فکر دیم اخرم؟ عرکتش بیشتر یه مکانیزم دفاعی بود ناراحت ای بود که چرا دایش بی خیال آزادی شد این تعلیل تو یا اون؟ این فرقم میکنه معلومه که فرق میکنه؟ آخرش صدای فیلم آزادی مشروطه ساخته حسین محکام رو شنیدیم خب منتظر توضیحات تسنیم کامران عزیز اسم فیلم قبلا من سعید هستم بود که بعدا به آزادی مشروطه تغییر کرده فستی جانم و بازیگرای اصلی شامبور جوان، هنگامه قاضیانی، شاهرخ فروتنیان و حسین پاکتر هستن بسیار خب بریم سراغ جشنواره موسیقی فج که در حال برگزاریه تو جشواردی امسال تا اینجا سه تا اجرا لغو شده یکیش امشب بود که کنسرت گروه تندر لغو شد کسی نمیدونه چرا بعدیش کنسرت سیتار شجاعت حسین خان نوازنده دست هندی که فردا شب قرار بود اجرا بشه امیر باهادری مدیر روابت عمومی جشوارده گفته به دلیل طول کشیدن پروسه اداری و مشکل ویزا و همینطور قانون جدید سفر به آمریکا شجاعت حسین خان ایران نمیاد اجا اول پول اداری و مشکل ویزا قبول اما نمیدونم قانون آمریکا چه ربطی داره اصلا به این قضیه اصلا اصل قضیه همینه یعنی شوشهادخان از ترس که به خاطر دو روز سفر بگیره نتونه بره آمریکا اعلام کرده نمیام. اما سومین لغو هم مربوط میشه به اجریه کاوه یغما که هنوز معلوم نیست برای چی لغو شده یغما گفته ما لغو نکردیم هم کلا من گاردن میگیرم این لغو ماجرا خیلی پیچیده است تو گردم میگیری پیشن. یا کاوه گفته کی گاردن میگیره کاوه گفته من گاردن میگیرم خودت من که همه چی رو میگیرم من حالا به حال تا چند روی انده خبر مبسق میشه که ماجرا چی بوده بسیار خب. ممنونم ازت کامران عزیز باید می میکنیم تا فردا و به اتفاق کاری از کاوه یقمایی میشنویم به نام برگرد تا فردا خودمی از این پرده های سکوت از این لحظه های خودم از این خون خسته شدم برگر برگر از این فکر هر شب تو از این حس سرد خودم از این آین خسته شدم برگر جان سلام عرض می کنم خدمتتون میخواستم بگم که علیکم. این منظور شاعر از این بیت هنر نزد ایرانیان است و بس هنر رانندگی بوده قطعا چون ما ایرانی ها در این هنر همه صاحب سبک هستیم واقعاً سین الف تهران مرسی خدافظ بله خیلی ممنونم البته شاعر زمانی این شروع سرود که هنوز مردم جای پراید مثلا خر و جای نیسان قاطر و جای مثلا فرض کنیم لند کروز مثلا اسب سوار میشدن حال هم شادم اون زمان سوارکاری ها تو مای رانندگی الان بوده دیگه. هر حال ممنونم از تماستون اما یکی از مشکلاتی که توی دنیای هنر خیلی رو مخه دوستان عزیز بحث کپیکاریه یعنی یه هنرمندی یه جای دنیا با خلاقیت خودش یه اثر هنری خلق میکنه و جای دیگه ای از دنیا کسی که دوست داره هنرمند نامیده بشه اون اثر رو می تو دلش ای. چرا به فکر خودم نرسید؟ بعد میاد همون رو میذاره جلوش یه کپی دیگه از اون کار حالا با یه کمی دستکاری و حالا اعمال سلیقه و تغییرات و اینا درست میکنه به نام خودش روی بازار میکنه حالا بعضیام بدونه دستکاری و اعمال سلیقه و اینو همونجوری تلپی همونو کلا کپی میکنن خب عزیز من به فکر خودت نرسیده خب لابد فکرت در اون اندازه نبوده دیگه نه بعد که حاصل فکر و خلاقیت یکدیگر رو کش ببری بزن خودت بزنی که مثلا چه میدونم طرف زبان بلده میره کتابی رو به زبان اصلی میخونه میبینه ای چقدر خوبه بعد چیکار میکنه کار رو ترجمه میکنه یه سه خطونی میازش مثلا کم یا بهش اضافه میکنه به نام خودش کلن میده تو بازار تجربهم ثابت کرده شما اگه همچی کاری بکنی حالا چه میدونم هرچی حالا اهل فن بیان تو محافل تخصصی داد و بیداد بکنه که با این سرقت ادبی و اینا خیلی به کسی هم نمی رسه. یعنی اون کار به نام دوست هنرمند نمامون ثبت شده رفته پی کارش یا مثلا چه میدونم تو عالم نقاشی گاهی اگه هنرمند اصلی مثلا آدم اسم و رسم داری باشه این کپیه بدون دخل و تصرف و دقیقا مشابه آثار اصلی تهیه میشن و به عنوان آثار اصلی هم فروخته میشن که دیگه اسم کسی که این کار رو میکنه دیگه هنرمند نیست واقعا بهش در اسطلاح میگن جائل هنری دیگه جعل کرده دیگه بالاخره تو دنیای هنر از این دست اتفاقات هم ز بالا از بس که هنرمند کپی کار زیاد شده آدم یه کار هنری میبینه نمیونه لذتش رو ببره یا اول بری تو کتابای تاریخ هنر و سایت گالریای خارجی و مجلات معتبر هنری بگرده مطمئن کارمال مال خود هنرمند بعد هزش رو ببره انقدر که گاهی آدم یادش میره خود کار اصلا خوب بوده یا نه لیلی دوستم تخصصش گالری گردیه. ای منو با خودش برده بود یه نمایشگاه عکاسی. پای هر تابلو که وای میستادیم، یواشکی با گوشیش یه عکس میگرفت. بعد همینجور کلش تو گوشی بود تا چند لحظه بعدش که یه بهبهی میگفت و میرفتیم سراغ بعدی. گفتم اون گوشی رو بذار کنار، لذت ببر از نمایشگاه اومدنت. گفت اینم بخشی از لذت بردن از این کاراست. بیا نگاه كن اینجا تو گوشی من. دیدم عکس که میگرفت از هر تابلویی میزده تو سرچ تصاویر گوگل ببینم مال کسی دیگه ای نبوده باشه گفت میبینی به این میگن هنرمند اصیل گفتم والا این که کاراش کپی نیست و من بدون سرچ هم میتونستم بفهمم گفت چطوری؟ گفتم اخوه همه عکس یا کادر بندیش کدر کلی بود یا فلو بود بعضی همون هنرمند کپی کار باشن اصلا بهتره والا امروز با پیشخور روزنامه افتاب یزد به نقل از مشاور وزیر صنعت امروز تیتر زده بود که در تفریحات و سرگرمی بین 170 کشور 96 هم هستیم اتمالا تلگرام و وایبر برو اینار هم جزو سرگرمی و تفیه ایرانی ها حساب کردم اگر هر جور حساب کنیم با تای جدول باشیم به خدا نه وسط جدول روزنامه شهروند از قول آقای روحانی امروز تیتر زده بود که به بحانه دور زدن تحریم غارت کردند هی hey, آقا سال هاست به بحانه های مختلف مشغول همین کارن دور زدن تحریم هم روش ما چه عادت کردیم بابا و روزنامه مردم سالاری دیروز به نقل از محمد رضا آره تیتر زده بود که مسلمن لیست اصلاح طلبان وزین و افتخار همیز خواهد بود بله کلن اصلاح طلبان که کم نهی بردن حتی شد علی مطهری تحریر هم بیارن تو لیستشون بازم لیست دادن خودش باعثه افتخاره شب هم به پایان رسیدیم برنامه کاش فراموش نکنی که تصویری از تو سنجاق شده به ذهن این اتاق که خانه اطرت را مرور می در هر دم و بازدم نزدیک تر بیا نزدیک تر بیا شاید در سادگی همین حضور همین عشق قدیمی دوباره معنی شویم من و تو همیشه گیمی تو زندگیمی تو آج دیوونگی و دل می تو آسمونی تو مهرمونی به منو هر جا میریم میکشون با تو که هستم چیزی نمیخوا واسم بسه همین که با تو راه میدیم من دل سپردم تو و تو خوردم رفتی و دیدی من تو از یاد نبردم